های دانش برنامه‌ای از انجمن استادان و, و پژوهشگران ایدانی شنبهنده گون عزیز است. عصرتون بخیر. من کامران ابدینی هستم، مهمندار برنامه مرثیای دانش که هفته یک بار در شنبه ساعت 8:00 توسط همکاری انجمن استادان و بجوشگران ایرانی و کی آر ان رادیو ایران به شما تقدیم میشه. باز هم یادآوری می‌کنم که چون ترجیح میدیم که آگاهی‌ها رو کامل و همه‌جانبه و از نظرات مختلف توسط استادان و پژوهشگران ایرانی تبار به اطلاعاتون برسونیم برنامه‌های ما بدون هیچ گونه تبعیضی برای سیاست، مذهب، جنسیت، نژاد و روش فکری ارائه میشه. برای آگاهی بیشتر از خدمات این انجمن و یا واش جنوی برنامه‌های مرصد دانش میتونین به سایت اینترنتی اپسی Org. .که سوال میکنم A مس اسociation P مس professors S مس scholars I مس ایرانیان H مس heritage نقطه O R G سر فعال ارگانیزیشن مراجع کنید کارگردان فنی برنامه امام جناب و غیا ایدین اجری هستند که خیلی متشکرم که هفته یک بار مامزه میشومیشیم و مهمند آماده هستند لاست <تصفح> در زمین اگرم که فرصتی بود در قسمت آخر برنده اگر خواستید با گرفتن شماری 300 و 225 دوازده هفتاد دو شصت و چهار سوالات خودتونو در مورد بس امروز در میان بگذارید خب برنامه امروز از هر لحظه که سوابکانیم به نظر من البته بسیار جالبه. همونطور که می دونین، علامسی که از معدن در میارن هزاران سال تا سال طول میکشه که از یک ذره کربن به علامس شفافی تبدیل بشه. علامسای تقلبی البته وجود داره که بیشتر تقلب خودش مثل شیشه هست مثل کیوبک زرگونیان که تقریبا همون شیشه هست. ورزش اونجوری هم نداره. حالا حساب کنین اگر بتونیم ما همون الماس رو درست کنیم با سرعت بسیار زیادتر یعنی به جای اینکه هزاران سال طول بکشه در چند ماه یه الماسی رو ما بسازیم. اگر که بشه که ما به‌زودی می‌تونیم حتی با قیمتی کم این لباس الماس هم بخریم. این یکی. دیگه اینکه همون تو که می‌دونین پوسته انسان در گرما و یا سرما کارهای مختلفه انجام میده که بدن بشر رو در درجه ای مخصوصی در تمام مدت نگه داره که ما سالم بمونیم. جالب نمیشود که اشیای مختلفه هم پوستی داشتن که هوشمند بود که بتونه درجه حرارت اجناس مختلفه رو هم کنترل بکنه؟ اگر این موضوع رو دوست دارین، برنامه جالب رو براتون در نظر گرفتم. مهمان ارجمند امروز ما دکتر هامون کلانتری هستند که راجع به پوسته گرافین که از ذرات کربن درست شده صحبت خواهند کرد. دکتر کلانتری پس از گرفتن لیسانس و فوق لیسانس خود در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگ... دانشگاه دانشگاه علم و صنعت در شرکت فولاد اصفهان به عنوان مهندس پروژه مشغول به کار شدند و پس از چندی متخصص تولید فولاد در ایران گشتند. در سال 2008 از طرف دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ریورساید به ایشون بورسیه ای داده شد که اومدن اینجا و دکتری خود را در مهندسی مکانیک گرفتن پس از اون برای 2 سال هم تحقیقات خودشون رو به عنوان پست داک اذا در یو سی ای ریورساید ادامه دادن و از امسال مو شانسی داریم که تونستیم ایشونو در دانشگاه خودمون در دانشگاه پلیتکنیک کالیفرنیا استفاده کنیم که استاد مهندسی تولیدات شدند و افتخار دارم که همکار ما هستند جناب دکتر هامون کلانتری به برنامه مرسای دانش خوش آمدید خیلی متشکرم جناب بدینی من از سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در برنامه مرزای دانش همچنین سلام می کنم خدمت همه شهروندگان خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در خدمتتون باشم حالا احتمالاً بحث رو اتفاق در خدمتتون جلو می بریم سفارش می‌کنم که شما برای شروع باز به فرمایید که از کجا می‌تونیم ادامه بده. ولاد، چون صحبت عالماسو کردیم، میدونم که خانوم ما محسوس هن و خیلی خوشحالن که بیشتر بگون دسترسی بیدا کنن. آقایونم خیلی خوشحالن که کمتر خرجشو می‌کنه. از عالماسو شروع فرمایید. جاج متأبیه کمالیه. فقط من اجازه می‌خوام که اول برای که یک معرفی خیلی کوتاهی از این انزالی که شما گفتید انزال کربن که در هایدر. با داده اتمی 6 در جدول تناوبی هست بدم خدمت شما و شنوندگان عزیز به اینکه این عنصر این خیلی عنصر جالب و خیلی عجیبی هست جدا از اینکه در تمام ترکیبات حالا عالی و حتی غیر عالی که خب اکثرا غیر عالی هستند ترکیبات کربن و هیدروژن وجود داره این عنصر خودش به تنهایی میتونه شکل های مختلف داشته باشه شکل الماسیش رو که خب شما فعل بودیم بیشتر هم تلاش دارد داره در میوناتوانوما و حالا به نوعی هم آقايون این اپکنش آخته شده هست، مونهای دیگه هم هست که مهم باز شکلی متقابلش همین نکته قلمه یا مغز مدادهای نوشتنی هست که اونها هم از گرافی تشکیل شده و حالا یه مقداری این تلاش داره های دیگه هم داری که پیشرفتتره که حالا جدیدان خیلی اینها به معرض تلاشتانی قرار گرفتن که از جمله این نانو لوله‌های کربونی و ترکیب فلورین و ساختار دیگه‌ای که باز خیلی بحث داغ روز شده ساختار گرافین. خب برای درست کردن این گرافین اینو چه جوری درستش می‌کنن از اون پوسته گرافین شما شروع بکنین و ادامه بفرمایید. به کمال میل برای اینکه میگم این توضیح رو من خدمتتون پیچاپیش ارسنم برای اون داستان الماس ما خب شرایط رو در تولید الماس توی زمین و اون فشار بالا و در موجه حرارت بالا زیاد لازم داریم و این در حقیقت الماس مصنوعی رو ما هم با فرایندی که اسمش دی‌وی‌دی هست تونستیم در آزمایشگاه در حقیقت فرآیند مواد در اینکه کالیفرنیا در شهر در شهر ریورساید یا همون یو سی ااست که شما فرمودین شعر بیسازی بکنید در مورد گرافین هم این در حقیقت ماده ای هست که همون اتم های کربن هست که به صورت ترکیب یا بهتر بگم شکل لانه زنبوری و به صورت ساختار شش دلئی در روی یک سطح ایجاد میشه این ماده در حقیقت خیلی ماده جدیدی فقعد نبوده تا خللی استالیان صد هزارها سالی ماده وجود داشته ولی کسی از خواصش و بخصوص کسی از وجودش به صورت عادی و در دمای محیط خبر ندشته تا اینکه دو تا دانشمند روسی توار در دانشگاه منچستر انگلیس با روشی خیلی ساده‌ای از همون مغز مداد یا همون گرافیت با روشی کسب نواری یه چسب نواری رو کشف کردند و هی چندین بار این اندن این لایه ها رو امتحان کردن تا آخر در سال 2004 موفق شدن یک لایه اتمی رو از روی این گرافتی که شامل این لایه‌های مختلف هست بردارن و در سال 2010 هم این عجایب و این کاری که این دو تا دانشمند که آقای اندری جرمی و آقای کانستانتین نووزالت در دانشگاه لیست دادرس منچستر انگلیس انجام دادن بعد جایزه نوبل فیزیک در سال 2010. این یه تاریخچه کوچولی که فقط از طریق خدمات شما و شناخت منیگان عزیز ازش بکنم که این ماده این جور پایه عارضه وجود کشید. این خیلی یاله بود به خاطر که همیشه دانشمندان فکر میکردند که یک لايه اتمي به صورت دو بودی چون اینها مشهور به اين اولی ماده اي هست که به صورت دو بودی به دنیا معرفی شد و همیشه اینها فکر می‌کردند که شاید واقعا امکان نداشته باشه یک لایه اتمی به طور به صورت پایدار در درجه حرارت محیط به قول معروف اون تثبیت رو داشته باشه و همیشه فکر کردن که این باید غل بشه لوله بشه یا به صورت اون نانولوله‌های کربونی در بیاد یا به هر حال شکلی متفاوت از یک سطح و یک لایه صاف به شکل گرافین داشته باشه این در حقیقت نقطه عطفی شد که خیلی از تحقیقاتی که قبلا به صورت تئوری و به قول خود دوستان و دانشمندان اهل فیزیک نظری به عنوان یک اسباب‌بازی فیزیکی خطاب می‌شدین گرافین که همیشه فکر می‌کردن خب این اگر باشه خیلی خوبه ولیش موقع ا روی وجودش کار نمی‌کردن ولی روی خواصش که اگر ما یک لایه کربونی میتونستیم می داشته باشیم چه اتفاقاتی می افتاد، به خاطر همین وقتی که این ماده معرفی شد بسیار بسیار سریع رشد کرد بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میشد و تقریبا الان در حدود 10000 تا در سال پتن سولید میشه در دنیا برای کاربردهای مختلفش که حالا من در ادامه بحث حتما خدمتتون در مورد تکنیک های مختلفه تولید این ماده جدید و تحویلاتی که این ماده در بقول معروف کش مانداز صنایع الکترونیک و دیگر صنایعی که میتونند استفاده کنن از این ماده خدماتتون رای میکنیم. مشکل مگه از زودین بریم به آگاهیا بریسیم و بعداً بر میگنیم خدمات. حتماً با تمام می. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار، پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی، و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. تا هتل پیام شایانی وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودن هیلز، لس آنجلس، گرندین، اروین، سان دیگو و سان خوزه با شماره تلفن 8007777777 8007777777 لاکی 777 خوش شانسی تماس بگیرید 8187777777 याक्षायानी قرامات دفاتر اشرف حبیبی اقامت دائم امریکا از طریق خانوادگی سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های هنری علمی و ورزشی گرفتن تابعیت امریکا مزایای دولتی شامل حقوق بازنشستگی از کارافتادگی اس اس آی مدیکال مدیکر مزایای مختلف برای افراد 65 سال به بالا و دفاع از حقوق شما در دادگاه‌های سوشال سکیوریتی دفاتر خدمات اشرف حبیبی نامی آشنا و مطمئن برای جامعه یانی برای اطلاعات بیشتر و گرفتن مزایایی که حق شماست با تلفن 949 552 1122 تماس حاصل نمایید. اشرف حبیبی با 20 سال تجربه در امور مهاجرت و خدمات اجتماعی یار و پشتیبان شما 949 552 1122. in <تصفيق> Los Angeles سال ی دانش برنامه از هفتمانه وسطان و پژوهشگران ایدونی دوستا نزدیک کامران عبداللهی نیستم در برنامه مرسوی دانش با دکتر همونه که الان تری صحبت می کنیم راجب اه اه پیدایش و تولید لایه گرافین که از کربن درست شده و اینجوری که من فهمیدم یک لایه‌ایه که دو بعدی و پس یعنی در اصل عمقی نداره در یعنی فقط ایکس و و داره درسته طایقا دکتر عبدینی دقیقاً اولین ماده‌ای بود چون بعد از پیدایش گرافین و بعد از اینکه واقعاً قرار این به دنیای موارفی فوت خیلی ماده های جدیدی هم شنشمنداش رو کردن که ببینن آیا میشه این ماده ها را به صورت دو بعدی ساخت معروف ترینش مولیدن سولفید هست یا سولفید مولیدن که اینها هم مصارف الکترونیکی دارن و در حقیقت کلا این نسل لایه های دو بعدی و, و مواد دو بعدی بعد از پیدایش گرافین خیلی سرعت گرفته و الان فکر می کنم حدود 18 ماده ای داریم که جانشین داده تولس بند حداقل در مرایاس از ماشکهای تولیدشون بکنند و به جمعی معرفی کن بکنند ولی این گرافین در حقیقت اولین و و شروع این ماده های دو بوده. اون وقت ارزو تولش میتونن کنترل بکنند؟ بسیار به نوکتای خوبی اشاره کردین. آره، دکتر وادی نی. این مربوطه که من خدمتتون از کردم در رابطه با پیدایشش اینکه با همون چسب نواری و اسکاتیت که مون و اون نوک مغز نوک مداد که همون گرافیت هست این خب عملا نمیتونه یک کار بردی در مقیاس صنعتی داشته باشه و خیلی هم عملا امکان غیر قابل امکانی که شما بتونین یه مقدار بزرگی یا وسعت بزرگی از این فیلم بسیار نازکی که ندیده نا میشه و نه قابل بقول معروف جا به راحتی جابجایی هست بولید بکنید به خاطر همین دانشمندا به فکر افتادن که یک روشی برای این تولید گرافین درست بکنن که بتونن در حقیقت ابعاد بزرگتری و این لایه رو در در جهت همون دو بعدی که داره بزرگترش بکنن که بتونن ازش در جای مختلف استفاده بکنن حالا من به خاطر اینکه یه ترمن یه ایده ای رو خدمت شما و جناب اندگان محترم تقدیم می‌کنم چرا حسن این گرافین اینقدر به قول معروف مورد علاقه صنایع مختلف و نظر دانشمندان رو به خودش جذب کرد؟ من با همون تحقیقات نظری پیدا کردم که این ماده اگر بتونه در حالت دمای عادی بشریت عادی وجود داشته باشه بسیار قابلیت‌های مختلف داره از جمله قابلیت هدایتی بسیار بالا حدود 100 برابر بیشتر از نوقله خواص حرارتی بسیار بالا، استکام فوق العاده بالا و خواصی اینکه شفاف هست و خواصی بالا کوانتومیه برای ابر الکترون داره و بسیار بسیار کاربردهای مختلفی تو سنایی مختلف از الکترونیکی رفته تا سنایی وسایل نوری و حتی برای تشخیص تشکیل کل هایی که در بدن انسان هست و معروف، آه، آه، و معروف کاربورد های بیولوژیکی و زیست شناسی هم استفاده میشه. ولی اجازه بدید من حالا یک مرحله برم جلوتر و در مورد نحوه تولید این تک لایه اتم کر یا مولکول کربن بهتر بگم. خدمتتون توضیح کوتاهی رو ارائه کنم. ببین قبل از اینکه ما به طور جدی پروژه تولید گرافین رو در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید شروع بکنیم این ماده ترشود بود ولی روش های بسیار محدودی بود. از نظر روش تا از باز بخار یا به سبک لاستی ودی که Chemical Vapor Deposition هست و این روش هم با اینکه روش تقریباً سنتی یا نیمه سنتی بود، اشکالی که داشت این بود که در طول در طی این فرایند سی و دی نمیتونستند در هر تمرین مداوند اون لایه ی یک das va yek nawakht mohtamelen bar yek atom ro begiran yani oon baz hamoon mikham bargardan be sohbat-e Hazrat Ali ke Fahmuddin Abad in mahdijat-e abad ijad mikard shoma laye bozorgi dashtid vali roozuman hame jash nashtas bud. matlab az yek laye nabood balo bazi joha do laye dashtid bazi joha se char laye bazi joha hatan graphit talid mishod yani kheyli zaqin mishod ke masalan mige baad az 10 laye ro ma'moolan mige گرافین خطاب نمیکنن البته خب گرافین خودش همون تک لایه است ولی خب این متداول که میگم مثلا دو یا سه لایه گرافین یا چهار لایه گرافین به هر حال این محدودیت باعث شد که ما در مجموعه دانشگاهی و این تیم همکاری که داشتیم در دانشگاه ریورس ساید بیایم و شروع کنیم به اینکه این, این ماده رو ماده رو براش یه تکنیکی درست بکنیم که هم ساده باشه هم ما بتونیم با وسایل خیلی آشن اینو بتونیم در هیچت در شرکت صنعتی و مدرسه صنعتی تولیدش بکنیم. همین که کیفیت اون لایه خیلی خوب باشه و مورد دیگه این که ما بتونیم در هیچت این روش رو به صورت یک تکنیک جدیدی معرفی کنیم. به خاطر همیشه رو کردیم از براینده در هیچت روش ده از پایه مزاب این کارو انجام دادیم. و پس از دو سال تقریباً کار و تلاشی متقابلیم که بندی بالته بانوان همکار و دستیار این پروژه با ایروت برآمینی همکاری میکردم و تحت نظر ای دکتر آبادشیان که در حقیقت یکن زمینه دینه انژینرینگ باله باله در ایرانی است باله باله و تحت نظر یکن این پروژه انجام شد. ما مدتا نهایت تونستیم خیلی روش ساده ای رو در حقیقت تکمیلش بکنیم و توجعهش بدیم که دقیقاً به چیزی شباهت داره به تولید نبات که ما از یک محلول فوق اش با کربونی که این حالا ما اینجا به جای اون در حقیقت آب که شکر رو توش حل می‌کنم ما به جای آب اون مذاب مون مذاب یک فلز از عناصر واسطه مثل نیکل میتونه باشه یا مثل مس و به جای شکر هم کربن داریم که حالا میتونه از و محفظه ذوب به همون بوته ذوب تامین بشه که گرافیتی باشه یا اینکه به صورت خرده‌های گرافیت در داخل این مذاب ما بریزیم و بعد که حرارت رو می‌بریم بالا می تونیم این کربن‌ها رو توش مولکول‌های کربن رو حل بکنیم بعد از اینکه این درجه حرارت به اون درجه حرارت فوق اشباع رسید و اتم‌های زیادی رو ما علاوه حد اکثری که می تونستیم حل کنیم بعدا جهات رو میاریم پایینی و این اتم هایی که حالا کی در اثر اومدن پایین درجه حرارت نمیتونن در داخل مذاب بمونن به صورت یک قشاو و فیلم خیلی نازکی در سطح خارجی مذاب تشکیل میشن اون ابتدا که ما این در حقیقت در نتیجه اولیه‌ای که ما ابتدا شروع کردیم ما اول گرافیت گرفتیم روی اون لایه خارجی بعد کم کم با تغییر شرایط درجه حرارت زمان و به هر حال پارامترهای مختلفی که کار می‌کردیم نهایتاً تونستیم ما به یک تک لایه‌ای از اتم‌های کربن که روی لایه خارجی این مذاب نیکل یا هالامست میتونه تشکیل بگیره دست پیدا کنیم. من من داشتم الان فکر می‌کردم که چقدر این کارهای که تو laboratorium دانشمندان دارن انجام میدن شبی همین مسابقه فوتبال خودمون که چند روزه که همه داریم تماشا میکنیم که لحظه ها ساخته میشه و در یکی از این لحظه ها یک مرتبه یک گلی زده میشه و یک فجوهشی نتیجه ای میگیره ولی این لحظه های مختلف یعنی خیلی چیزای منفی توش پیدا میشه یعنی که جای نمیره تا اینی که یه مرتبه در اون لحظه چون که این لحظه ها رو شما مثلا دانشمندان میسازین میتونه که یه نتیجه جالب بگیره که سالها مردمی که مثلاً داشتن با مداد ترش مداد خودشون رو داشتن تیز میکردن، اصلاً به این فکر نبودن که مو خوردههای مثلاً نه این نکه مداد، ممکنه مثلاً یه چیزی داشته باشه توش که به درد سنت بخوره. تا بیاد. نه. خب شما به فرق من چرا لذیتش تولیدی که شما ازش استفاده میکنین از مال بقیه بهتره؟ بله عزم به حضورتون این فقط من بیشتر تاکیدی که می‌تونم داشته باشم چون این روش رو ما به صورت پتننت در آوردیم البته تحت نام گروه هست و این مزیتی که داره مهم‌ترین مزیتش این هست که اولا شما تجهیزات پیشرفته نمی‌خواید خیلی با همون روش‌های تقریباً نه چندان پیشرفته و ساده حالا اگه بشه بگیم زور بولیختگی شما میتونید این ماده رو تولید بکنید این اولین ویججیت و به نظر من بزرگترین ویججیت که شما سرمایه گذاری بیاتی نمیخوان و خیلی فرآیند پیچیده ای نیست برای تولید مهمترین قسمت این کار این بود که ما بتونیم یک لایه ای رو رشد بکنیم که باز در همون رابطه ای سوالی که شما فرمودی از بنده که ابعادش به چه نحوه باشه ما میتونیم با گسترش ابعاد این در حقیقت مقیاس آزمایشگاهی که داریم خیلی مثلا اگه سطح موزاونو بزرگتر بگیریم میتونیم خیلی سطح بزرگتری رو تولید کنیم از این گرافین و در حقیقت این ویجگی رو داره این تکنیک و این قابلیت رو داره که با سرمایه‌گذاری کم ما میتونیم کوالتی نسبتا خوب و کیفیت خیلی خوبی از این محصول تک لایه‌ای کربن یا همون گرافین بدست بیاریم الان این گرافینی که وجود داره که شما فرمودین که دو بعدیه بعدش چیه درست یعنی طول ارزش چی هست اگر از در واقع با این لایه‌ای که ما در تولید کردیم در مقیاس آزمایشگاهی خودمون این در حدود حالا دو سه سانتی متر بیشتر نیست و این فقط در سطح یعنی در حقیقت اگر بخندیم مختصات رو بگیم ایکس و وای داره. ن. زی قضیه‌ای که در حقیقت ارتفاع خود این ماده هست چون خیلی نسبت به دو تا بُد دیگه یعنی نسبت به طول و عرضش ارتفاعش بسیار کم هست که ارتفاعش دقیقاً همون جوای یا بهتر بگم قطر اتمی مولکول کربن می‌شه. ن. چون در مقایسه با طول و عرض این زخامت خیلی خیلی خیلی ناچیز ده آنگستروم است به خاطر همین این دو بعدی بودن از اونجا میاد و نمونه هایی هم که ما توی این روش تونستیم تولید بکنیم در حد در حقیقت سانتی متر در طول و عرض هست. بله، اگه اجازه بدیم به آگاهی برویم و اگر لطف کنین سوال منو در رجیبش بکنین که چیجوری یا هم چیزی دیروز میشه و تکونش داد از یک ساتی به سات دیگه گذاشت. بعد از آگه یا بر میگردیم به جواب من. سلام، رضا تهرانی هستم، مدیر فروش توتا بورنچ. دو تفنگ تبلش خریده هر کنی توتای مورد نظر با ما در توتا بورنچ تماس حاصل کن. ۸۴۰، ۹۱۹۰، ۳۱، ۳۸ बहुजूरदार फिर स्क्र दार हलो हाव य रही دکتر مهدیه هایری از ایران محسر دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی با همکاری وکلای ایرانی و آمریکایی 88343 نوادنو 88343 نوادنو K I R N از Universal City California اینجا K I R N 670 AM Simi Valley Los Angeles سرهای دانش برنامه‌ای از ارجمندان و استادان و پژوهشگران میدانی جناب آقای نازیس به برنامه مرصد دانش گوش میدین. چهره دکتر کلانتری رجبی همین میدونم یه سطحی که هیچ گونه ارتقایی نداشته باشه، قطری نداشته باشه تکون دادنش از یه نقطه به یه نقطه دیگه خیلی سخت خواهد شد. اینو چه جوری شما انجام میدین؟ بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودین جناب دکتر عبدینی من واقعا از این این نکته بی بی شما خیلی معذبم که می‌خواستم این رو اصلاً در فرآیندم بگم که شما لط کردید در قلب سال از ونده فورسیدید. ببینید اصلاً تمام مشکل داشتن خمین جابجایی این لایه هست که شما نمی بینید، نه این غض ضخامت داری که شما بتوانید این رو با یک اه نمیدونم امباری یا امبارایی یا چیزی بگیرید خلاصه خیلی مشکل هست. امدا تا حالا بگویی که در حالا اون دو بهش پیگاه بلمی کردن این هست که شما مستقیم این لایه یک یعنی تک لایه رو روی اون ماده که معمولا میفن استفاده بکنید برای که سیلیکون بیتر خاص مستقیم رو اون بنشون برد. ما توی این تکنیک در حقیقت بعد از اینکه دما به دمای موهیت برمی‌گرده یک بهلزه منجمد نیکلی داریم که روش این لایه شکل گرفته برای اینکه بخوام این لایه رو جدا بکنیم کاری که ما کردیم که که در حقیقت تکنیکی هست که این هم حالا استفاده می شود به طریقای مختلف برای جداسازی گرافیت. ما اینو دانه هاتوی عصبی حل کردیم و ترکیب اون یک لایه گرافیت. به علاوه یا اون پلزه که الان منجمد شده و به صورت یک توده ی از نیکل در آمد در او در حالا عصارهای مختلف از جمله ترکیب از عصاره سولفونیک و نیتری مای رو حلش کردیم و اون لایه رو به صورت شناور در اون محلول در آوردیم و بعد با استفاده از تکنیک های فیلتراسیون، دقیقاً فیلتر کردن و استفاده از همین سیلیکون ویفر اینها رو این لایه های شناور رو در این محلول از این فیلم رو از اون محلولش جدا کردیم. البته <تصفيق> کار خیلی راحتی نیست و واضام برمیگرده به همون خواستی که اگر اون تک لایه گرافین رو شما خوب و با کوال و با اون کیفیت خوب درست کرده باشین کمی است کامی زیاده و همین راحتی تغذیب میشه و من میخوام این حالا یه ایدهی به ادمت شما و اشنا و نگران موترم بدم اینو بگم که اگه شما یک لایه گرفلینه تغذیهایی داشته باشید به حدود یک متر مرتبه و با این یک لایه که وضوح در حدود یک میلی گرمه یا یکهزارمگرمه میتونید یک, یک گربهای رو به وزن 4 کیلوگرم بلندش کنین. این وزن این یک لایه گرافین که 1 متر مربع در حقیقت مساحتش هست از یک موی اون گربه هم کمتره یعنی یک موی گربه وزنش بیشتر از این لایه گرافینیه که شما می‌بینین واش. این گربه رو بلند کنین. یعنی تقریبا یک مثل یک توری میمونه که مثلا مایگیرا استفاده میکنن اما وزنش خیلی کم تره ولی استقامتش بیشتر دقیقاً چه جالب مد و به جای اینکه الان اینجوری که شما فرمودین روشای دیگه اون این لایه گرافین رو روی اون فلز دست دارن میکارن اما شما اینو میتونین جابجا جا بکنین و روی هر چیزی که بخاین هر موقعی بذارین دقیقاً مد تسیار جلو. خوب چه استفادهای دیگری از این گرافین میشه کار کرد غیر از بالانکهادنی یه قوربے؟ از جای خویه این هم ولی این گرافین با این پیشامینه ای که من خدماتت فون از کردم و با اون خواسته خلی ویژه و طرف من منحصر به فرد. من میخوام بگم که یک تحویل بزرگی رو ما خواهیم شاید خواهیم از من حالا ایده ها رو خدماتت رو میگم شما تصور بکنین به زودی شما و شی روی موبایل خیلی خاینداش چه ذحامت ورق که حالا این فقط تنها نازک بودنش جالب است اه... یعنی تنها تنها نازک بودنش البته جالب است کما اینکه شما میتونید رو حتی لولاش هم بکنی بذارید داخل جیبتون اصلا چهره اه... تونس... صورتش رو گوشمون نذوری میورد دیگه دستمون جالب اینقدر انگار این, اه... این اه... بخاطر اینکه شما میتونید با این اه... ماده در حقیقت اه... نه نه شما این درهای نمایانگرهایی برای موبایل برای حتی تلویزیون برای هر چیزی درست بکنید بر اساس این ماده و با استفاده از این ماده که شما اون محدودیت شکستن اون لایه هالو سیلیکونی قبلی رو ندارید و بسیار اینها فلکسیبل هستند و الان نسل جدید مانیتورها و تلویزیون‌ها و نمایشگرهای صفحه موبایل‌های جدید داره میاد که فکر می‌کنم ای پچ میکنم شرکت سامسونگ هم یه تبلیغاتی رو الان شروع کرده که شما حتی اگه تلفن تون هم خاموشه یا حتی اگه شما میگم اینو لولهش هم بکنی بد. هیچ آسیبی به سیستم موبایل شما یا اون وسیله شما نمیریه چی یادت به نظر من یادت یه چیزی به زودی یه عکس برگردونی در میاد که شما میتونید روی دستتون بذارین و بردارین میشه تلفنتون دقیقاً یک از کاربوردهایی که خیلی برای ماها ملموس‌تر ممکنه باشه کاربوردهای بسیار زیادی داره این ماده من اگر بخوام براتون لیست بلندبالایی میگم بعد بگم در رابطه با تولید سلول‌های در حقیقت آفتابی این گرافین میتونه بسیار بسیار هم شریعیت و راندمان کار اینها رو ببره بالا و حتی اینها رو میتونه تا یک پدوم نازک‌تر و سبک‌تر بکنه در مورد باتری های لیتیوم یونی های لیتیومی, لیتیومی، همین طور تا 100 برابر میتونه ظرفیت شارژ اینها رو اضافه بکنه و هر دوره شارژ اینها رو میتونه حداقل تا 10 15 برابر بیشتر بکنه و واقعا یک انقلابی جدیدی با وجود این ماده و با پیدایش این ماده به من به شما نوید میدم که در پیش رو خواهد بود تما اینکه خیلی خوشم الان دست در حد مریاصای خیلی کوچیک یا لا فراتر از آزمایشگاه یا نیمه صنعتی تولید شده نه. و خیلی حتی در زمینه‌های بیو شناسی بگم از گرافین خدمتتون که این تک لایه چون هم خیلی کوچیکه و هم خیلی ساختار خاصی داره اینا اینا میتونن تک مول کول ها رو در داخل بدن انسان شناسایی بکنن چون حتی میتونیم با این دی ان ای رو مثل حالت فیلتر از این گرافین استفاده بکنید و خیلی از جایی رو که حالا اینها رو بود دانشمندای در حقیقت زیست شناس بگن ولی این دی ان ای رو شما میتونید با استفاده از این تکی لایه کربن اصلاحش بکنیم، تمو زیادش بکنیم و در حقیقت تشخیص این مولکول ها و دی ان ای ها توسط این ماده گرافین میتونه خیلی خیلی کار دانشمندا رو راحت تر کنه monsieur ali اون وقت حالا یه قدم بریم جلو تا چون در جو به الماس من گفته بودم با... میخوایم صحبت بکنیم از این گرافین چجوری به الماس میرسین مثلا <تصفح> <تصفح> این داستانه خوبی <تصفح> من تا ما تقریبا میشه گفت برق رفتیم یه جوریه البته از الماس <تصفح> به گراف رسید <تصفح> دقیقاً <تصفح> اینکه باز همون داستان اونچور کربن هست الا این دفعه با شکل جدی کل قلبه علامت که اینجا باز بعد نسلی چی دمان این اتمها بر میکنه بر خلاف گرافیم که کربنها در یک سطح و کنار هم به صورت ذخیره لانژن بولی نشستن توی ذخیره علامت این اتمها در قلبه یک چارچوبی و با یک بندهای یا حیوانهای الالو بنش بکاملیتر الالو کنده است در در حجم و به صورت یک ماده‌ای که خیلی ما دوستش داریم و خیلی برق و برق و به قول معروف موونه برعکسانی چشپی رو داره و در حقیقت توی این فرآیندی که ما دنبال گرافین و توله گرافین در روش‌های مختلف بودیم ما روش همون رسوب از فاز بخار یا دی‌وی‌دی رو ما امتحان می کردیم و در حقیقت با استفاده از دمای بالا و شرایطی که توسط یک موهیت پلاسما که توسط یک به حقیقت منبع ماتروویف ایجاد می شه در داخل یک محفظه ای که حله است ما تونستیم که کریستال های علامس یا بولور های علامس رو تولید بکنیم و روشن بدنیم و این, این با هر حرارتش از با پلازما میاد یا بله بله دقیقاً ما فشارش ده. از کجا میاد نقطه یکی هست همین هست تقریبا جناب دکتر عبدلینی ما با این تکنیک در حقیقت اون فشاری رو که لازم هست به خاطر اینکه ما به صورت فرآیند گازی وارد می کنیم اون عناصر لازم برای تولید الماس رو که گاز متان هست و گاز هیدروژن اینها در اساس در, اساس در, در اثر برخورد با این فضای فلزیا یا اون محیط فلزیا، اینها اتمها پیوندهاش مولکولها پیوندهاشون شکسته میشه و به صورت اتمهای فعال یا همون رادیکال در میآید. و اون فشاری که لازم بوده این کار انجام بشه ما در حقیقت لازم نب، نه به خاطر فشار، به خاطر اون شرایط حرارت و شکسته شدن این پیوندهاشیم یا ایجاد میکنیم و بعد که این پیوندهاش شکسته شد با توجه به اون پایهایی که ما برای رسوب این بوخار فاز فاز بوخار که تولید شده استفاده میکنیم میتونیم شروع کنیم دو نوع خیلی بسیار کوچیک رو مثلا در حد نانوی علاماس رو شکل بدیم و با ادامه دادن فرایند با زمان دادن به فرایند این دونه های کوچیک شروع میکنن به رشد کردن و اون در حقیقت شکلی که شما از الماس ذهن دارید رو براتون تشکیل میدن البته شاید شنوندگان عزیز بدونن که استفاده ای بسیاری از الماس در صنعت هست که شاید یکی از دلایلی که شما رو این دارین کار میکنین برای همین زرق و برق و نمیدونم جواهر نیست ولی برای استفاده اش در صنته درسته؟ حتماً نه. من برای تاکید بفرمایشه شما ارجو میکنم حالا این حذف رو هم دنبال میکنیم که برای الماس تصدیقی و یا به قول شما الماسی در جواهرسازی ها بشه استفاده کرد ما بتونیم ابعاد این الماس رو به اون اون اندازهای حالا 4 5 قیراتی برسونیم ولی در کنار اون من این خبر رو که شاید کمتر از چند روزی هست روی حالا وب‌سایت های مختلف هم دیدم شما ببینید دو سه تا کاربرد بسیار خوب از این نانو ذرات الماس یا نانو بلورهای الماس که بگم خدمتتون درست دراست پیدا شده یکیش استفاده از این نانو ذرات الماس برای شیمی درمانی تومورهای مغزی هست که این ذرات خیلی خوب میتونن با توجه به اینکه خیلی بی اثر هستن دیگه خیلی نه. در مجاورت فضای یا اون محیط داخل بدن رادشه تغذیه میشن و اینها میتونن خیلی ذرات خوبی باشن برای اینکه بتونن حوادث شیمیایی رو حمل بکنن و در حقیقت اینها رو بدون اینکه توشون تغییری ایجاد بکنن نهایتاً به اون تومورهای سرطانی برسن اها و این تازه‌ایه که از جدیدترین تکنیک‌های هست برای درمان تومورهای مغزی که اون های که شیمی درمانی میکنن با این روش میتونن خیلی هم حجم بیشتری بر به اون تومور سرطانی برسونن و همین که اون ذره خودش هیچ گونه اثر سویی و یا هیچ واکنشی و یا هیچ دخل و تصرفی در اون دارویی که حمل میکنه نمیذاره به جا اسف فقط این... یه وسیله نقلیه است برای بله بله بردن بله این دارو بله بله به بله این بله تومور بله سرطانی فرزه دقیقاً و عیناً باز در مرکز تحقیقات کنسر سرطان دانشگاه یو سی ال ای همون دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هم که هر دو تا هر دو تای این پروژه‌ای که من أش کردم این پروژه‌ای که خدمتتون گفتم و این پروژه‌ای که می‌خوام بگم اونجا انجام میشه پروژه‌ای که در دست اجرا دارن پروژه دیگه‌ای هست که برای درمان آبستیا اینها اومدن بلنس های درست کردن که از همین ذرات الماس استفاده شده توش و اینها هم باز حامل همون داروها هستن یا همون سیستم دراگ دلیوری که اینها هم اون داروی در حقیقت مولول که حالا به صورت رستر و اینها استفاده میشه مستقیم روی این ذرات ریز الماس توشش کردند و داخل اون لینز کار بازیشتن و دیگه بیمار اتیج نداری که هی در صنعت مشخصی با یک حالا دو یا سه سالتر لازم باشه که بر درمان آب سیا استفاده بکنه این لینز آنجا هستن و این ذرات علامتی که به این داروی درمان که از کن خدمتتون تیمولول هست آغشته شده و بعد زمان به تدریج در داخل تشش را وسیلی میشه و این آب سیاه رو درمان میکنه این دو تا پروژه پروژه خیلی خیلی جدیدی هست که اخیرا در دانشگاه یو سی ال ای تجریش قرار دارن روش کار میکنن بسیار جدیدی دکتر کالنتری جناب اجیر اینجا نشسته نه که من به آگاهی اونارم ایشون روغن دعوایی میکنن من متترسم از ایشون فایس کردم من تکامل می داشته هستن بعد از واقعیت پرو لیزر کلینیک با بیش از ده سال سابقه درخشان با آخرین مهندتهای زیبایی در خدمت شماست. لیزر درمانی مهای نخسته تزریق بوتاقس و انواع فیلرها رف راکهای واریسی با درمان جوش و آکنی scars جوانسازی پوست بارداشتن مول و سکین تاکس. سلام من دکتری سعیدیان هستم. حداقلی مدل پرو لیزر برای بهترین سرویس با بهترین قیمت می باشد. قیمت های لیزر درمانی پرو لیزر غیر قابل مقابله می باشد. این ماه با درمان س... services ماثاس بادان برای خانم ها مثلا هر جلسه underarms فقط 15 دلار فول بیکینی فقط 30 دلار لور لگز فقط 60 دلار و برای آقایان شولدرز فقط 40 دلار پرو ویس در گلندل و تارزانا حفظه هفته با پارکینگ رایگان تلفن 844 مد اسپا 1 844 مد اسپا 1 یا 844 633 7721 prolaceclinic.com سالی دو شدیش تنATCHت شده و موفق جامعه ایرانی، ابتدایه دیلرشیپهای هومان هاندای و هومان چیپرا در لس آنجلس باعثی می‌رسانند. و به همین مناسبت فقط وفادار تا پایان اینما شما می‌توانید یک چیپ چروکی 2014 را با فقط ماهی 189 دلار لیس کنید. که جوپا پر می‌کنید فقط با ماهی 189 دلار یک چیپ چروکی را لیس کنید. بدیل شیپ هومانجیپ در تارتوه 405 و, و مانچستر تاشی بیاورید و از قیمتوهای بی نظیر و سرвیس آلیم آن را برمان شوید. تلفن کد سیصد و ده دویست هشت سف حشت سف حشت یکبار دیگر سیصد و ده دویست هشت سف حشت سف حشت لیس کریسلر بر 189 دلار پس تاکس با 1500 دلار سان 24 ماه کلوز دان لیس آن اپروف کریت از طریق کریسلر فننشلر سرویس‌ها بر اساس 12000 مایل در سال 15 سنت بر مایل اکسس. هومان جیپ صدا در افتاب ای ام لس آنجلس مارش های دانش برنامه‌ای از ارجمان استادان و پژوهشگران ایرانی دوستان ما برنامه مرصاد دانشو گوش میدین با جناب دکتر هامون کلان تری داریم صحبت میکنیم راجع به گرافین و الماس و الماس های سنتی و میدونم که سوالای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه اگه دوست دارین با تلفن 323 512 7264 تماس بگیرید من قبل از اینکه این اینو ادامه بدیم اگه اجزه بدین دکتر کلالتری یک نفر هست که خیلی وقت روی تلفن هستن ایشون اگه اجزه بدین سوال جواب ایشونو بدیم بعد جواب سوال ایشونو بدیم بعدن برمیگردیم بفرمایید خواهش می‌کنم جانب دکتر آقایان، جناب دکتر کالنتاریا، من سوالی داشتم باید به اینکه آیا ریتینه مصنوعی ام با این تکنولوژی قابل استفاده است که در برای کسانی که دیتاش شده ریتینه شون در بی نایشون از دست دادن استفاده بشه؟ البته گزینه بدم قبل از اینکه دکتر کرانتریز و جوین سو باد بکنند، ایشون پزشک نیستند و چه چیز پزشک نیستند وریق دن ممکن اطلاعاتی راجع به موزود است. آنها از پزشکی که هم سو باد شد. باد. به فارمای خواهیش میکنه. من سلام میکنم، خدمت شما دیم مختارمیکه دالرو مطرح کردن همونطور که جامعه دکتر آبادینام خدمتتون گفتم متأسفانه من اطلاعات پزشکی خیلی پس عادی دانش زمین ندارم، ولی حتماً در برای حریم در هیچ قسمتی شبکیه هم حالا نه فقط با گرافیک، با موارد دیگه و موارد جدیدی که الان دانشمندان روش کار می کنند، من مطمئن هستم که کارزیاچوده گرافیک انها و ویژگیه خیلی فوق العاده ای که داره اینه که شما با بسیار حجم خیلی کمی و با در حد نانو سر و کار داریم و من فکر می کنم به خاطر اینکه میزان آسیبی که می رسد آنها اگر جایی بخواد استفاده بشه خیلی کم هست من فکر می کنم امید هست که برای خیلی سلولهای اصلی به خود سلولهای اصلی چش که ترین کل درشون طبق خاطر نازکی و خیلی دریف بودنشون تعلق شد یا امکان پذیر نبود یا خیلی کم امکان بوده با این ماده جدید بشه که این نخ روزهای آرزو جبران که جناب دکتر کلانتری این این گرافین ماده گرافین خاصیت چسبندگی هم داره ازم به حضورتون که این در حقیقت به خدی خود بستگی به این داره که شما روی سطح حتی دقیقاً روی چه پایه‌ای این ماده رو شما استفاده می‌کنید یه موقع هست اون سطح شما یا پایه‌ی شما یک ماده بیولوژیکی هست بنده. مثلا فرض کنیم قشایص سلولی هست ما همون حس که ممکنه یک ماده مثل همون نیکلی باشه که ما روش این گرافین رو روش بدیم 100 درصد قابلیت چسبندگی داره ولی بسته به این که شما چه ماده‌ای رو به عنوان پایه استفاده می‌کنید که این گرافین رو روش بنشونید این چسبندگی فرق می‌کنه و می‌تونه خیلی کم یا خیلی زیاد باشه بل. اون وقت از لحاظ کش اومدن و پلاستیسیتیش اون چطوره بله بله این هم خیلی خوبه من باز براین که یک عدد ورقه مثالات خیلی حدودی خدماتم بگم اینکه شما اگر یک لایه دوبدی فولادی داشته باشین با همون اندازه و با همون در هر چهck از جراثین جراثین حدود 100 برابر است کاملا تسلیمش بالاتر از اون هکی لایه فولادی خواهد بود. یعنی فرزند همچون که شما مثلاً یاد دین که یک متر مربع آن می تونه یه گوربار رو رو خودش نگیرد داره اما بله. تغییر شکل میده این لایه گرافی نیا نه یه همچون مساحت وای میشه که ام این در حد یک تغییر شکل برگش پذیر یا الاستیک تغییر شکل خواهد داد ولی بعد که شما آن بارو برداریم برمیگرده به سر جاش یعنی این پیوندهای بین کربن هایی که حالا و یک ساعت نشستن و دست دستشون رو بامدگیدادن یه مقداری باز میشه پس اینقدر نیست که به اون مرحلهایی باقلش ما برگش نپذیری یا فیلادلفیک کرده و اون شباکر رو از هم پاره بکنه دوباره موجب اینها بر میگردند به سمت جای اولشون و گرنه اون نمايشگرهاي منعطف به اون هر خيلي دیگه قبل کاربر نبودن اگر بر میگشت به سر جای اولش درست خب من چند دقیقه آخر برنامه هسته آیا اطلاعات دیگیری راجع به این موضوع دارین چون می‌خواستم راجع به آدیاشایش هوشمندم صحبت کنیم اما فکر نمی‌کنم اینقدر وقت داشته باشی فکر می‌کنم من تنها چیزی که می‌تونم اضافه کنم به صحبت‌های قبلی این هست که به هر حال این مواد جدید حالا در بحث مواد الکترونیو نیمه هادی ها و این ها حالا در گرافین یا مواد حافظه دار که شما فرمودین فقط من میتونم بگم که کاربرد های بسیار زیاد این ها دارن که هنوز خیلی ها خطا متوجه ش نم شدن و این نمیگم این به قول معروف نوید رو من میتونم خدمت شما و شنوندگان محترم بدم که اینقدر این دامنه کاربرد این مواد جدید که فاوض و مختلف هست که من فکر می‌کنم واقعاً یک اتفاق خیلی خیلی کشف‌گیری بزودی ما شاهد خواهیم بود حالا چه در درمان بیماری‌ها چه در کیموتراپی چه در کانتاکت لنزهایی که استرادن چه در ازن به خدمت شما قطعات الکترونیکی و وسایلی که ما در خونه استفاده می‌کنید به هر حال این مهد دانش‌بندان از اصل مواد و ساخت و تولید در این مدتی که پیشرو خواهیم داشت خیلی هم زیاد نیست. من مطمئنم که تأویل‌های زیادی رو برای تمام جامعه ای بشری بال می‌انخند. به این سرعتی که من می‌بینم، مثلاً داریم رجیب 5 تا 10 سال آینده داریم صحبت می‌کنیم که این تأویل‌ها دیجید میشه. درسته؟ نه 100 سال آینده. عقب. <تصفيق> عقب یا چی؟ حد مان که بند و جنوالی شاهد هستی و نیبی و هدکم جز به استفاده کننده های این تکنولوژی های جدید هم خواهیم کرد. بسیار جالبیم، چون به نظرم ما در زمانی به دنیا می‌آییم و وجود داریم این جاروی زمین که شاهد خیلی تحولات مختلفی بودیم مخصوصا در رشته در صنعت و تولید همین جور چیزایی که الان اطرافمون هست برای اینکه هزاران سال دنیا تقریبا یه جور بود مردم همون اسب و آراور رو داشتن استفاده میکردن و با اسب مثلا نامشون از اینور به اونور میبردن برای میگم هزاران سال تا اینی که الان مثلا جای رسیدیم که این تلفنی که سلفونی که ما 10 سال پیش نداشتیم الان داره و ورولی شما در یک ورقه میشه که میاد روی صورت ما و بسور جادبه و اکثر شنوندگان میدونن خیلی از اینا خوشبختانه دسته ایرانی‌ها هست مثل دکتر کلانتری که دارن راجع به این چیزای مختلف و دقایق مختلفی انجام میدن و ان شاء الله به زودی ما شاهد گرفتن جایزه نوبلم توسط دوستانی مثل جناب دکتر کلان تاریخ این بود، اما در این فرصت ما ازشون دست وادم میکنیم که در دانشکده ما بریم و درس بدن و تحقیقاتشونو ادامه بدن. وقتی شما از پایش گرفت خار باند است که ساله همکاری با شما برای همکاری رو داشته باشم، من هم متأسفانه واقعا آرزوهی قلبیم هست که تمام این مشکلات و این حالات که در عرصه سلامت و بهداشت که در عرصه تکنولوژی و استفاده آن توسط باشمان دایره عالی خوب ایرانی در اقتصاد دنیا حلت است. مخصوصاً جالبیش اینه که دنیوم چیزی که ما درس اند استفاده میکردیم الان بیشتر و بیشتر در بایی مدلی کلم در اندش نشست استفاده میکنند و واسه همین کسی که آمادگی یعنی خیلی از کسایی که در پزشکی هستن من می‌بینم دوستان دارن پی اچ دی هم می‌گیرن و تحقیقاتشون با بیومدیکال انجینیرینگ تقریباً یکی است و بیومدیکال و متریال و اینا همه دیگه در یکی میشه در است یک سیستم تحقیقاتی وجود داره که همه مهندسین و پزشکان همه دارن با هم کار میکنن که وضعیت بشر رو بهتر کنه دقیقاً همینطوره است که می‌فرمایید خب اگه اجازه بفرمایید دیگه ما زحمتو کم بکنیم خیلی خیالی. خوشحال شدیم آقای دکتر که شما اینجا تشریف داشتین و با ما صحبت کردین راجع به این آلیاژهای هوشمندم اگه اجازه بدین یه دفعه دیگه شما داشتین میارین اینجا و با هم دیگه راجع بهش صحبت khoاین کرد حتما من هم خیلی تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون در برنامه مرزهای دانش این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید براز جه خوش وقتیست که هستم در برنامهای بعدی هم مدعو نمی‌شدم حضور داشته. خیلی ممنون دوستان عزیز هفته خوبی را برایتون آرزو داریم.